بسم الله بنامی خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره آنانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند خداوند اعمال ایشان را زایه گردانید و آنانی که ایمان آوردند و عمل نیکو انجام دادند و به آنچه بر محمد نازل شد ایمان آوردند در حالی که این حق است از نزد پروردگارشان خداوند از ایشان به دیه هایشان را زدایید و حالشان را اصلاح کرد این سبب است که کافران باطل را پیروی کردند و بگمان مؤمنان از حقی که از نزد پروردگارشان است پیروی کردند و این ترتیب خداوند برای مردم و را مثال می زند. از چون با کافران مساف میدهید دهید، کار شما گردن زدنشان است. تا چون بر آنان چیره شدید، قید و بند را بر ایشان محکم گردانید. بعد از این یا منت است به اینکه آنها را رایگان آزاد کنید یا فدیه گرفتن در برابر آزادی ایشان. تا اینکه جنگ بار خود را به زمین نهد، این است حکمی که باید از آن پیروی شود. و اگر خدا می خواست یقینا از ایشان انتقام می گرفت اما جهاد را برای آن فرض گردانی تا بعض شما را به وسیله بعضی دیگر بازماید کسانی که در راه خدا کشته شدند خداوند هرگز اعمالشان را زایه نمی کند به ایشان را هدایت می کند و حالشان را به صلاح می آورد و ایشان را به هشت داخل می که اوصاف آن را به ایشان معرفی کرده است ای مؤمنان اگر خدا را یاری کنید شما را یاری می کند و اگام های شما را استوار می گرداند و اما کافران پس مرگ باد بر ایشان و خداوند اعمالشان را زایی می کند این سبب است که آنچه را خداوند نازل گردانی ناخوشایند می انگاشتن پس اعمالشان را حبت کرد آیا در زمین سفر نکردند تا ببینند بی که آقابت کسانی که پیش از ایشان بیدن چی شد؟ خداوند ایشان را حلاک کرد و برای کافران امثال این مجازات است این سبب است که خداوند مولا و مددگاری مؤمنان است و واقعا کافران مولا و مددگاری ندارند بیگمان خداوند آنانی را که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند و های داخل می که از زیر درختان آنها جویبارهای جریان دارد و کافران از مظاهر فریبنده دنیوی به همان گونه به آن می شوند و می که چارپایان پایان می خورند و سرانجام آتش مسکن ایشان است ای بسا سرزمین هایی که مردم آن از مردم سرزمین تو جایی که تو را از آن بیرون کردن نیرومندتر بودن ایشان را هلاک ساختید و هیچ یار و مددگاری برای ایشان نبود. پس آیا کسانی که دلیل روشنی از جانب پروردگار خود دارند، مانند کسانی اند که زشتی عملشان برای ایشان زیبا جلو داده شده و از هوای نفس خود پیروی کردند؟ صفت بهشتی که بر پرهیزگاران وعده داده شده این است که در آن است از آب پاکیزه ای که گندیده و بدبو نمی شود و جویبارهایی از شیری که مزه آن تغییر نمی کند و جویبارهایی از شراب تهوری که مایه لذت نوشندگان است و جویبارهایی از عسل مصفا در آن برای ایشان از همه انواع میوهها میسر است و نیز آمرزشی از جانب پروردگارشان آیا کسانی که در چنین حالت گوارای قرار دارند مانند کسانی بوده می توانند که همیشه در آتش بسر می برند و برایشان آب جوشان نوشانیده می که روده را پارچه پارچه می و از میان ایشان کسانی اند که با تو گوش فرامیده هند اما چون از نزدی تو می روند با کسانی که به ایشان علم داده شده میگویند آیا او یعنی پیانبر همین اکنون چی گفت؟ ایشان کسانی اند که خداوند بر دلهایشان مهر زده و هوای نفس خود را پیروی کردند و اما آنانی که رهیاف شدند خداوند بر هدایتشان افزود و به ایشان تقوایشان را ارزانی فرمود. پس آیا جز قیامت که ناگهانی به ایشان می آید، انتظاری دارند، در حالی که همین اکنون بعضی نشانه های آن آمده است؟ پس چون قیامت به ایشان فرار است، چگونه برایشان پندشان سودمند خواهد شد؟ پس بدان براستی جز خدا معبودی نیست، و از گناه خود و مردان مسلمان و زنان مسلمان آمرزش بخواه، خداوند جای گشت و گذار و محل بود و باش شما را می داند؟ مؤمنان می گویند چرا سوره در مورد جهاد نازل نمی شود ولی وقتی که سوره محکمی یعنی سوره که حکم آن قاطع و معنای آن روشن است نازل شود و در آن جنگ ذکر کرده شود آنانی را که در دلهایشان مرض است میبینی که با سوی تو با نگاهی کسی که از مرگ بر او بیهوشی شیائت شده نظر می پس مرگ به ایشان بهتر است شایسته حالشان فرمانبری و سخن نیکوست و چون فرمان جهاد قطعیت یافت پس اگر با خدا صادق باشند این برایشان بهتر است پس در صورتی که شما سرپرست امور مردم شوید آیا فکر نمی کنید که در زمین فساد کنید و سلح رحم خیش را قطع نمایید؟ کسانی که خداوند ایشان را لعنت کرده است پس آنها را که و چشمانشان را نبینا گردانید پس آیا در قرآن فکر نمی یا بر دلهای ایشان خافله های بازدارنده از فهم آن نهاده شده؟ بگمان آنانی که بعد از روشن شدن راه حق به ایشان به عقب خیش برگشتند شیطان برای آنها این امر را زیبا جلوه داد و ایشان را به آروحای دور و درازی این سبب است که ایشان به کسانی که چیزی را که خداوند نازل گردانیده ناخوش آیند می انگاشتند. می گفتند در بعضی امور شما پیروی خواهیم کرد در حالی که خداوند اسرارشان را می داند. پس حال ایشان چی خواهد بود؟ وقتی که فرشتگان روحشان را در حال قبض کنند که به روحها و پشتهایشان بزنند. این از سبب است که ایشان چیزی را پیروی کردند که خشم خدا را برمی و رضای او را ناخوشایند می انگاشتند. پس اعمالشان را هبته کرد یا آنانی که در دلهایشان مرزی است داشتند که خداوند هرگز گیناهایشان را آشکار نمی اگر بخواهیم ایشان را به تونشان می دهیم. و تو آنها را از روی قیافه هایشان آنها را از لحجه کلامشان حتما خواهی شناخت و خداوند اعمال همه شما را می داند. ما شما را حتما آزمایش می تا مجاهدان شما و شک بایان شما را متمایز گردانیم و تا اخبار شما را مورد آزمون قرار دهیم یعنی اخباری را که از شما می‌رسد، آشکار کنیم بیگمان آنانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند و با پیامبر مخالفت ورزیدند بعد از اینکه راه حق و ایشان روشن شد هیچ زیانی به خداوند رساندن نمیتوانند و بزودی اعمالشان را می میکند ای مؤمنان خدا را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید و اعمال خیش را ضعی نسازید آنانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند و در حالی که کافر بودن مردن پس خدا هرگز ایشان را نمی هرگز سست مشروید و دشمن را به صلح زلطبار فران نخالید. در حالی که شما غالب هستید خداوند با شماست و او هرگز اعمال شما را زایه نمی کند بگمان زندگی این دنیا با زیست و بیهودگی و اگر ایمان آرید و پرهیزگار شدید خدا پاداش شما را می دهد و از شما دارایی های شما را نمی خواهد اگر از شما آنها را بخواهد و بر این تقاضا بر شما اصرار نماید بخل می ورزید و کینه و خشم شما را آشکار می سازد آگاه باشید شمایید که بخرس کردن در راه خدا فرا خوانده می شوید با این هم بعضی از شما بخل می ورزند و هر که باخل کند به خود باخل می کند و خدا بینیاز است و شما محتاج هستید اگر از داد و دهش روی برتابید خداوند برای عوض شما قوم دیگری را می آورد و باز ایشان و همانند شما نیستند